ماه مدتها بود که بالا آمده بود اما پیرمرد هنوز خواب بود و ماهی یک سر قایق را میکشید و قایق در تونلی از ابر فرو میرفت. از لرزش سخت مشت راستش که مقابل صورتش بالا آمد و تناب که دست راستش را سوزاند بیدار شد. دست چپش را هیچ حس نمیکرد و با دست راست تا جایی که می توانست تناب را نگه داشت و تناب با فشار از دستش در رفت سرانجام دست چپ تناب را یافت و پیرمرد با تناب خود را به عقب کشید و پشتش و دست چپش میسوخت و دست چپ همه فشار را تحمل میکرد و سخت بریده بود پیرمرد به عقب و به گلوله های تناب نگریست که آرام باز میشد شد هماندم ماهی پرید و یانوس منفجر شد و بعد سقوطی سنگین بود بعد ماهی باز پرید و باز پرید و قایق به سرعت پیش می رفت اما تناب به سرعت باز می شد و پیرمرد تناب را تا سرحد پارگی می کشید و باز می کشید و می کشید و میکشید پیرمرد به جلوی قایق پرد شده بود و صورتش در گوشت دلفین فرو رفته بود و نمی گذاشت تکان بخورد فکر کرد این همون چیزیه که منتظرش بودیم حالا باید غنیمتش بتونیم فکر کرد باید تاوان تناب ازش پس بگیری تاوانش رو بگیر نمی توانست جهش های ماهی را ببیند و تنها صدای شکستن سطح اقیانوس و, و صدای پاشیدن آب را از سقوط سنگین ماهی میشنید سرعت تناب دستش را سخت می برید. اما پیرمرد همیشه میدانست که این باید رخ دهد و می‌کوشید که نخ از قسمت‌های پینه دار دستش بگذارد و کف دست و انگشتانش را نبرد. فکر کرد. اگه پسرک بود، گلوله‌های خیست خیس کرد. آره، اگه پسرک بود. اگه پسرک بود. تناب باز و باز و باز می‌شد. اما سرعتش کم شده بود. و پیرمرد ماهی را وامی داشت که ذره ذره تناب را به دست آورد. پیرمرد اکنون سرش را از روی تخته و از لای تکه های گوشت دلفین که چانش آن را له کرده بود برداشته بود. بعد روی زانوهایش بود و آرام روی پاهایش ایستاد. هنوز هم تناب می‌داد اما هر لحظه سرعتش را کمتر می‌کرد. بعد به عقب برگشت و به جایی رسید که با پایش گلوله‌های تناب را بیان که ببیند حس می‌کرد. هنوز تناب فراوان داشت و حال ماهی بود که میبایست تمامی بار استکاک که تنابهای تازه رها شده در درون آب را با خود بکشد. فکر کرد خیلی خوب، تا حالا بیشتر از دوازده بار بیرون پریده با کیسه های پشتش پر از هوا شده. اگه بمیره نمیتونه اونقدر پایین بره که نتونن بالا بکشانش. دیگه چیزی نمونده که به چرخیدن بیفته، اون وقته که باد کارشو بسازم. نمیدونم چی اونو اونطور ناگهانی از جا پروند. شاید گرسنگی اون همه نامیدش کرده. یا از چیزی تو تاریکی شب ترسیده. آه شاید یه بار ترس برش داشته. ولی آخه اون که انقدر آروم و قوی بود و اونقدر بیباک و اونقدر مطمئن به نظر می آمد. عجیبه. گفت. پیرمرد فلامر بهتر خودت بی و مطمئن باشی دوباره گرفتیش ولی نمیتونی تنباتو جمع کنی اما دیگه چیزی به چرخ زدنش نمونده پیرمرد حالا ماهی را با دست چپ و شانههایش می‌کشید خم شد و با دست راست مشتی آب به صورتش زد تا گوشت له شده دلفین را از صورتش بشوید می‌ترسید حالش را به هم بزند و استفراغ کند و قوایش را از دست بداد. صورتش که پاک شد دست راستش را از کناره قایق بیرون گذاشت تا در آب شور بماند و خود به روشنایی پیش از سپید دم نگریست فکر کرد تقریبا داره رو به شرق میره معنیش اینه که خسته شده و داره با جریان پیش میره دیگه چیزی به چرق سدنش نمونده اون وقت تازه اول کار اصلی ماسته بعد که فهمید دست راستش به حد کافی در آب مانده، بیرونش آورد و نگاهش کرد، گفت، اوی اوی، ازش بعد نیست، درد برای انسان مهم نیست، تناب را به دقت چنان گرفت که از روی هیچی که زخمهای تازه دستش رد نشود و خودش و بارش را جابجا جا کرد تا بتواند دست چپش را از بدنه دیگر قایق به دریا فرو کند، به دست شپش گفت با همه بیلی قطیت پر بد نبودی اما یک آن نتونستم پیداد کنم فکر کرد چرا با دو دست قابل به دنیا نیمدن؟ شاید تقصیر خودم بوده که یکیشونو درست تربیت نکردم ولی نه خدا شاهده که فرصت کافی برای یاد گرفتن بهش دادن هرچند دیشب کارش خیلی هم بد نبوده تا الان بیشتر از یهبار نگرفته. اگه بخواد بازم بگیره، همون بهتر که تناب قطعش کنه. این فکر را که کرد فهمید که دیگر فکرش درست کار نمی کند و فکر کرد که باید باز هم از دلفین بخورد. اما با خود گفت نمیتونم. بهتر خول بشی تا اینکه استفراغ همه قوت ازت بگیره. مخصوصاً که چون صورتم توش فرو رفته میدونم که با خوردنش حتما بالا میارم. تا وقتی فاسد نشده برای وقت مبادا نگهش میدارم. حالا دیگه برای تقویت غذای خیلی دیره. به خود گفت. عجب خرفتی افتی هستی خب اون ماهی پرنده رو بخور. ماهی پرنده پاک شده و آماده سر جایش بود. و پیرمرد با دست چپ آن را برداشت. و تا دومش را خورد و استخانهایش را به دقت جوید. فکر کرد. قوهش تقریبا از بقیه مایا بیشتره. یا اقلن اونجور قوهی که من لازم دارم. حالا دیگه هر کاری که از دستم بر اومده کردم. حالا بذار جنگ در بگیره و بذار بچرخه تا بچرخیم. سومین بار بود که خورشید از آن که پیرمرد به دریا زده بود، طلو می کرد که ماهی چرخ زدن را آغاز کرد. نمی توانست چرخش ماهی را از روی شیب تناب ببیند. هنوز خیلی زود بود. تنها حس کرد که فشار تناب کمتر می شود و آرام با دست راستش به جمع کردن آن پرداخت. کشیدگی تناب به حد معمول رسید. اما درست همان دم که از شدت فشار به نقطه پارگی رسیده بود آرام آرام شل و آزاد شد پیرمرد شانه و سرش را از زیر تناب می‌گذراند و آرام و یک نواخت آن را به درون می‌کشید. هر دو دستش را با حرکتی دورانی به کار گرفته بود و میکوشید تا حد امکان کار کشیدن تناب را با بدن و پاهایش انجام دهد پاها و شانه های پیرش مهوران حرکت دورانی بود گفت، دایره خیلی بزرگیه، اما پیداست که داره چرخ میزنه. بعد دیگر تناب نیامد، آنقدر نگهش داشت تا قطرات آب را دید که در نور خورشید از آن بیرون میپرد. بعد تناب کشیده شد و پیرمرد زانو زد و گذاشت که تناب به اکراه به درون تیره آب برگردد. گفت، حالا به دورترین شعاع دایرهش رسیده. و فکر کرد، باید تا جایی که میتونم تناب و نگه دارم، هر بار جریان آب دایرش کچیکتر میکنه، شاید تا یه ساعت دیگه بتونم خودش رو هم ببینم، ای... حالا باید بش کلکت بزنم و بعدش باید بکشمش. اما بعد از دو ساعت ماهی هنوز آرام چرخ میزد و پیرمرد خیس عرق بود و تا مغز استخانهایش خسته بود. اما دایره ها کوچکتر شده بودند و از شیب نخ میفهمید که ماهی ضمن شنا کردن به طور یک نواخت بالاتر می آید. یک ساعت بود که پیرمرد جلوی چشمش نقطه های سیاه میدید و شوری عرق چشمش را می و زخم بالای چشم و روی پیشانیش را می پیرمرد در غم نقطه های سیاه نبود. با آن فشاری که تناب را میکشید وجودشان طبیعی بود. اما دو بار سرش گیج رفته و نزدیک بود از حال برود و این خیالش را ناراحت میکرد. گفت نباس از حال برم و به خاطر همچین ماهی بمیرم. خدایا حالا که به این قشنگی داره بهم نزدیک میشه خودت بهم صبر و تحمل بده. نزم میکنم صد بار دعای پدر ما و مریم مقدس رو بخونم. اما حالا نمیتونم، فکر کرد. حالا خیال کن گفتم دیگه، بعدن همشو میخونم. هماندم ضربه و لرزه ناگهانی بر تناب را که با هر دو دستش گرفته بود حس کرد. ضربه سریع و سخت و سنگین بود. فکر کرد. داره با نیزهش میزنه به سیم غلاب، فکرشو میکردم، باید این کارو میکرد. هرچند که ممکنه باعث پریدنش بشه و من دلم میخواد به جاش همینجور چرخ بزنه البته پرشهاش برای هوا گرفتنش لازمه اما بعد از هر پرش جای غلاب تو دهنش شلتر میشه و ممکنه غلاب از تو دهنش در بیاد بلند گفت نپر ماهی نپر. ماهی چند بار دیگر به سیم غلاب کوفت و با هر ضربه پیرمرد کمی تناب می‌داد فکر کرد نباید بذارم بیشتر درد بکشه درد خودم مهم نیست اختیارش دست خودمه اما ماهی رو ممکنه عصبانی کنه چیزی نگذشت که ماهی ضربه ها را متوقف کرد و باز آرام به چرخیدن پرداخت پیرمرد دیگر یک سره تناب جمع می کرد. دوباره حس کرد که دارد از حال می رود. با دست چپ از آب دریا برداشت و روی سرش ریخت و باز ریخت و پشت گردنش را مالش داد. گفت الان هیچ جای بدنم نگرفته. به زودی ماهی میاد و منم قدرت مقاومت دارم. تو باید مقاومت کنی حرفشم نزن. جدوی قایق زانو زد و لحظه کوتاه تناب را باز روی پشتش لقزاند. فکر کرد حالا استراحت می تو چرخشو بزنه و هر وقت که بالا آمد بلند میشم و کارمو شروع میکنم. کنم وصفصی مقاومت ناپذیری به جانش افتاده بود که به تخته جلوی قایق تکی داد و بدون اینکه تناب جمع کند بگذارد ماهی چرخش را بزند اما وقتی از فشار تناب فهمید که ماهی به سوی قایق برگشته و نزدیک می شود، از جا برخاست. و باز کشیدن و دور خود چرخیدن و جمع کردن تنابی که به درون قایق می آمد پرداخت. فش کرد. همه عمرم هیچو خسته تر از این نبودم. حالا باد مساعدم داره شروع میشه. برای بردن ماهی خیلی خوبه. خیلی لازمش دارم. گفت وقتی دور بعدی رو میزنه استراحت میکنم. حالم خیلی بهتر شده. و تا دو سه دور دیگه میگیرمش کلاه حسیریش پشت سرش افتاده بود و بر اثر فشار دور زدن ماهی روی تخته جلوی قایق افتاد فکر کرد خب ماهی بالا تو کارتو بکن همین دور میگیرمت دریا به طور محسوسی بالا آمده بود اما نسیم خوش میوزید و پیرمرد برای بازگشت بدان نیاز داشت گفت سمت جنوب و غرب رو میگیرم. آدم هیچوقت تو دریا گم نمیشه. تازه جزیرهام خیلی بزرگه. در سومین دور بود که برای اولین بار ماهی را دید. ابتدا او را چون سایه تیره دید که گذشتن طولانیش از زیر قایق عظمتش را باور نکردنی میساخت. گفت اوه نه، نباد به این بزرگی باشه. اما به همان بزرگی بود و در پایان این دور و در فاصله سیمتری قایق به سطح آب آمد و پیرمرد دُمش را دید که از آب بیرون بود و بلندتر از تیغه داسی بزرگ بود و بنفش کمرنگی بر فراز آبی پررنگ آب بود و به عقب متمایل بود و در همان حال که ماهی نزدیک به سطح آب شنا میکرد پیرمرد توده عظیم تنش را و راه راههای بنفش دور بدنش را میدید. بالههای های زیر بدنش بود و بالههای های عظیم پشتش باز و گسترده بود. در این دور بود که پیرمرد چشمان ماهی و دو ماهی مکنده خاکستری را دید که بر ماهی می پرگیدند. گاه به بدنش می چسبیدند، گاه از او دور می شدند و گاه در سایش آسوده شنا کردند. بلندی هر کدام حدود یک متر بود و سری که شنا کردند، تمام بدنشان شلاقوار چون مار ماهی به حرکت در می آمد. اکنون پیرمرد عرق اما این دیگر خورشید نبود که عرقش را در میآورد. هر بار که ماهی چونان آرام و یک نواق دور میزد، پیرمرد تناب بیشتری جمع میکرد و یقین داشت که تا دو دور دیگر نیزه را به بدن ماهی فرو خواهد کرد فکر کرد ولی باید بذارم نزدیک بشه نزدیک نزدیک نباید سرشو نشونه برم. باید قلبش رو هدف بگیرم گفت آروم و قوی باش پیرمرد در دور دیگر پشت ماهی از آب بیرون بود اما از قایق دور بود در دور بعدی هم ماهی هنوز از قایق دور بود اما پشتش بیش از پیش از آب بیرون آمده بود پیرمرد حتم داشت که اگر کسی بیشتر تناب جمع کند به زودی ماهی در کنار قایق خواهد بود را از مدت‌ها قبل حاضر کرده بود و گلوله تناب سبک قلاب که یک سرش به میله دکل بسته شده بود در سبد گردی قرار داشت. ماهی اکنون هم چنان که دور میزد زیبا و آرام به قایق نزدیک میشد و تنها دوم عظیمش حرکت میکرد. پیرمرد تا جایی که میتوانست تناب را کشید تا به خود نزدیک ترش سازد یک دم ماهی بر پهلو چرخید و باز خود را راست کرد و دور دیگری را آغاز کرد. پیرمرد گفت. آ دادم بالاخره چکنش دادم باز حس کرد که دارد از حال میرود اما با تمام زورش ماهی از این را نگه داشت. فکر کرد تکنش دادم شاید دفع دیگه شکستش بدم و باز فکر کرد دست ها بکشید باها مکم بایستید آی سر برام سالم بمون سالم بمون. تو باز هیچ وقت از هوش نرفتی این دفعه میگیرمش اما این بار نیز بوانک با پیرمرد همه کوشش خود را به کار بسته بود و قبل از آمدن ماهی خودش را و همه نیرویش را برای کشیدن ماهی آماده کرده بود ماهی خود را از نیمه راه عقب کشید و سپس بدنش را راست کرد و دور شد پیرمرد گفت ای ماهی ماهی تو که بالاخره بود با میمیری ولی مگه باید منم با خودت بکشی؟ فکر کرد. اینجوری نمیشه کاری کرد. دهانش آنقدر خوش شده بود که نمیتوانست حرف بزند. اما دستش به آب نمیرسید. فکر کرد. این بار باید بیارمش کنار قایق دیگه نمیتونم تاب چند دور دیگر رو بیارم. با خود گفت. چرا تو میتونی؟ تا ابد میتونی تاب بیاری؟ در دور بعدی چیزی نمانده بود که ماهی در چنگش باشد اما باز ماهی بدنش را راست کرد و آهسته دور شد پیرمرد فکر کرد ماهی تو داری منو میکشی اما حق داری برادر هرگز موجودی بزرگتر، قشنگتر، آرومتر و نجیبتر از تو ندیدم بیا و منو بکش برام فرقی نداره که کی کیو میکشه فکر کرد حالا دیگه داری قاطی میکنی پیرمرد و باید حواستو جمع کنی. حواستو جمع کن و یاد بگی که مثل یه مرد رنج بکشی. و فکر کرد. یا مثل یه ماهی. با صدایی که خود نمیشنید گفت. ای فکر درست کار کن، درست کار کن، درست کار کن. دوباره دیگر گردش ماهی به همین نفت تکرار شد. فکر کرد. سردر نمیارم. حالش چونم بود که هر بار فکر میکرد از حال خواهد رفت. سردر نمیارم. اما یه بار دیگه تلاش می کنم. بار دیگر تلاش کرد و این بار که ماهی را می حس کرد دارد از حال میرود. ماهی بدنش را راست کرد و دوباره با دوم عظیمش که در هوا موج میزد. آهسته دور شد. با آنکه دستهایش سست شده بود و چشمانش سیاهی میرفت، به خود وعده داد. یه بار دیگه تلاش میکنم. بار دیگر تلاش کرد و باز مثل همیشه بود. حس کرد که قبل از آغاز کار از حال خواهد رفت و فکر کرد. یه بار دیگه هم تلاش میکنم. همه دردش را و همه تهمنده قوایش را و همه قروری را که سالیان دراز از خود رانده بود در دست گرفت و در مقابل عذاب ماهی نهاد و ماهی بالا آمد و به پهلو چرخید و آرام، بر پهلو شنا کرد و دهانش داشت به تخته قایق میخورد و بعد بلند و عمیق و گسترده و نقرفام و با راه راه بنفش از کنار قایق گذشت و در آب بی انتها می نمود. پیرمرد تنور را به زمین انداخت و با پایش نگه داشت و نیزه را تا آنجا که می توانست بالا آورد و با همه قوایش که از طاقتش افسون بود به پهلوی ماهی و پشت بالی بزرگ سیناش که در هوا تا بلندی سینه یک مرد برافراشته بود، فرو کرد. پیرمرد فرو رفتن آهن را حس می کرد و به دسته ی نیزه تکی داد و فرو ترش راند و سپس همه وزنش را در پیان به بدن ماهی فرستاد. بعد ماهی که هنوز زنده بود و مرد در وجودش خانه کرده بود، با همه برازندگیش از آب، بلند، برامد، و آن بر و بالای سهتبر و آن همه نیرو و آن همه زیبایی را به نمایش گذاشت گویی که در هوا بر فراز پیرمرد و قایق معلق بود و بعد با صدایی مهیب در آب افتاد و بر سر و روی پیرمرد و همه جای قایق آب پاشیده شد پیرمرد احساس ضعف و بیحالی می کرد و نمی توانست خوب ببیند اما تناب نیزه را باز کرد و گذاشت که از میان گوشت نمایان دستانش آرام بدود و وقتی توانست ببیند دید که ماهی به پشت خوابیده و شکم نقرفامش از آب بیرون است. نک نیزه در گوشه از کتف ماهی فرو رفته بود و دریا از سرخی خون دل ماهی رنگ انداخته بود. در آغاز به تیرگی تپی بود در اعماغ آبی آب و بعد چون ابری گسترده شد. ماهی نغرفام و بی حرکت بود و بر امواج شناور بود پیرمرد در همان یک نظر که توانست ببیند خوب نگاه کرد و سپس نخ قلاب را دو بار گرد میله دکل جلوی قایق حلقه کرد و سرش را روی دستونش گذاشت به تخته قایق گفت هزار حواسم پرد بشه من یه پیرمرد خستم اما این ماهی رو که کشتم کشتمو حالا باید به کار تن بدم، فکش کرد، حالا باید کمنداب و تناب و حاضر کنم تا بتونم کنار قایق با خودم بکشونمش، اگه حتی دو نفر بودیم و قایق رو تو آب دمر می کردیم تا ماهی رو بلند کنیم و بعد آب قایق رو خالی می کردیم، بازم تو این قایق جا نمی گرفت، باید همه چیز حاضر کنم و بعد بکشونمش جلو و خوب ببندمش و دکل و بالا ببرم و بادبون و بکشم و به خونه برگردم. شروع کرد به جلو کشیدن ماهی تا تناب رو از گوشش رد کند و از دهانش درآورد و سرش را به پهلوی قایق محکم ببندد. فکر کرد دلم میخواد ببینمش رو لمسش کنم و حسش کنم. اون بخت منه، اما از خاطر این نیست که میخوام حسش کنم. و فکر کرد. کمون میکنم بار دوم که نیزه رو توی تنش فرو کردم قلبشو حس کردم. حالا بیارش تو و محکم ببندشو یک کمن دور دومشو یکی دور کمرش ببند تا محکم به قایق وصل بشه. گفت. کار تو با کمپیر مرد. و ای آب نوشید حالا که کارزار تموم شده نوبت کار گله به آسمان بلند و بعد به ماهین گریست به دقت به خورشید نگاه کرد و فکر کرد نباد از زور چیزی گذشته باشه باد مساعدم داره میگیره حالا دیگه تنوع مهم نیستن وقتی رسیدم خونه با پسرک جمع و جورشون میکنم گفت. دیالا ماهی بیا اما ماهی نیامد و همچنان در آبها قوطه میخورد و پیرمرد خود و قایق را به سوی او کشید. با اینکه سر ماهی را به جلوی قایقش بسته بود نمی توانست بزرگش را باور کند. تناب قلاب را از دور میله دکل باز کرد از گوش ماهی گذراند و از دهانش درآورد و یک بار دور نیزه روی بینی ماهی پیچاند و از گوش دیگرش رد کرد و باز دور نیزه بینی ماهی پیچاند و به سر دیگر تناب گره زد و حلقه را به میله دکل که جلوی قایق بود بست. بعد دنباله تناب را برید و به عقب قایق رفت تا دومش را نیز ببندد. رنگ ماهی از آن مخلوط بنفش و نقری به نقری برگشته بود و راه راههای های ارغوانی روی بدن و کم کمرنگ شده بودند. نوارها از کف دست باز یک مرد پهندتر بودند و چشم ماهی همچون آینه های دوربین زیر دریایی یا چون قدیسی پیشاپیش خیلی پیروانش دور و بی تفاوت پیرمرد گفت چاره جز کشتنش نداشتم. بعد از خوردن آب حالش بهتر شده بود و میدانست که دیگر از حال نخواهد رفت. فکر کرد اینکه من می بینم از سی کیلو هم بیشتره. شاید شایدم خیلی بیشتر باشه. فکرشو بکن. اگه دو سفامشم گوشت باشه کیلویش شست سنت چقدر میشه؟ گفت. نمیدونم. باید با مداد حساب کنم. مغزم اونقدر درست کار نمیکنه. به نظرم امروز دیماجیو به من افتخار کنه. درسته که پاشنه پام سالمه ولی دستا و پشتم بدجوری عذابم می‌دادن و فکر کرد نمیدونم سیخک پاشنه چیه شد ما داریم و خودمون خبر نداریم ماهی رو به جلو و پشت و کمر قایق بست چنان عظیم بود که گویی پیرمرد قایقی بس بزرگتر را به دنبال می‌کشد تک نخی برید و با آن فک پایین ماهی را به تیغه روی پوزش بست و به دینسان می توانستند امن و امان پیش بروند. بعد دکل را سوار کرد و با چوب نیزه و چوب زیر دکل بادبان دار را کشید و قایق به راه افتاد و با پیرمرد که عقب قایق لم داده بود به سوی جنوب غربی حرکت کرد. برای شناختن جنوب غربی نیازی به قطب نما نداشت. همان وزش باد موافق و احساس کشیده شدن قایق برایش بس بود. فکر کرد، خوبه یه قاشق و به یه نخ کوچیک ببندم و سعی کنم برکه چیزی بگیرم بخورم و گلوی تازه کنم. اما نتوانست قاشقی پیدا کند. ساردین ها نیز فاسد شده بودند. پس دسته از خزه های زرد اویانوس را با چنگک به درون کشید و تکان داد. و میگوهای کوچک از لابلایش بر تخته های قایق افتادند. بیش از دوازده میگو بیرون ریخته بود که چون ککهای خاکی بالا و پایین میپریدند. پیرمرد مرد سرهاشون را با شست و سبابه میکند و با دم و صدفشان خوب میجوید و میخورد. میدانست که با همه کوچکیشان مقوی و خوشمزند. پیرمرد هنوز دو جرعه آب داشت و بعد از خوردن میگوها نیم جرعه از آن را نوشید. قایق با وجود از کار افتادگانی که به همراه راه میکشید خوب پیش میرفت و پیرمرد با دسته سکان که زیر بغلش بود آن را هدایت میکرد. از آنجا می توانست ماهی را ببیند و تنها کافی بود به دستهایش نگاه کند و تخته قایق را بر پشتش احساس کند تا بداند که ماجرا واقعا رخ داده و رؤیایی در کار نیست. یک بار در اواخر کار که سخت درمانده بود فکر کرده بود شاید خواب می‌بیند اما بعد که ماهی را دیده بود که از آب بیرون می‌آمد و پیش از سقوطش در آب بی حرکت در آسمان آویزان شده بود یقین کرده بود که چیزی به قایت شگفت رخ می‌دهد و نمی‌توانست باورش کند بعد نتوانسته بود خوب ببیند هرچند که اکنون چشمانش نور همیشگی را باز یافته بود حال میدانست که ماهی وجود دارد و درد دست ها و پشتش رؤیا نبودند. فکر کرد: دستست زود خوب میشن. خونشون خوب شستم و آب شور زود شفاشون میده. آب تیره یه دریای واقعی بهترین مرهمه. حالا فقط باید مواظب هوش و حواسم باشن. دستها کارشونو کردن و داریم خوب پیش میریم. با اون دهن بستهش رو با اون دومش که سیخی استاده و بالا و پایین میره مثل دوتا برادر پیش میریم. بعد حواسش داشت پریشان میشد. فکر کرد اما راستی اونه که منو میکشه یا منم که اونو میکشم. اگه داشتم اونو پشت سرم میکشوندم حرفی نبود. اگه توی قایقم بود بازم حرفی نبود. اما در کنار هم پیش می رفتند و پیرمرد فکر کرد، اگه این رازیش می کنه، این اون باشه که منو می برتری من بر اون فقط به خاطر دوز و کلک هام بود و اون هیچ آزاری به من نرسوند. خوب پیش می رفتند و پیرمرد دستهایش را در آب شور فرو کرده بود و کوشید حواسش را جمع نگه دارد. سیروس